عزیزان به درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. در دو جلسه آینده ضمن مطالعه کتاب کوچک رود خداوند چیزهای زیادی به ما خواهد آموخت. رود بعدها جد مادری داوود پادشاه خواهد شد و در نتیجه جد مادری عیسی مسیح نیز خواهد شد. ما خواهیم دید که چطور این زن تبدیل به اوزوی از خونواده الهی میشه. لطفاً با دقت گوش کنید، چون که درس‌های عملی زیادی برای ما در این کتاب وجود داره. این شما و این معلم ما. باز هم وقتش رسیده که کتاب مقدساتون رو بردارید و در مطالعه بخش دیگری از کلام قدوس خدا با ما همراه باشید. ما در این دوره کل کتاب مقدس رو بررسی می کنیم و در ضمن این بررسی به کتاب روت رسیدیم. اگر کتاب مقدساتون هم را تونه، حالا به کتاب هشتم کتاب مقدس کتاب روت مراجعه کنید. همینطور که کتاب تاریخی عهد قدیم رو یکی پس از دیگری بررسی می کردیم، کتاب یوشه و داوران رو بررسی کردیم و حالا به کتاب هشتم یعنی کتاب روت رسیدیم. کتاب روت کتاب کوچک زیبایی حاوی داستان ای در کتاب مقدس هست که در ایام داوران به وقوع پیوسته. جالبه که بفهمید اون ایام تاریک روحانی در تاریخ قوم یهود مقدمات این داستان زیبای آشقانه رو که بهش کتاب روت میگیم فراهم کرده. کتاب روت یکی از زیباترین ترین کتاب های آشقانه است که تا کنون نوشته شده وقتی که به این داستان عاشقانه کوچک درست در میانه ایام ارتداد و انحطاط روحانی میرسیم که در کتاب داوران دیدیم ناگزیر سوالی برامون پیش میاد. یک همچین داستان عاشقانه اینجا چی کار داره؟ و یا اصلا چنین داستان عاشقانه ای توی کتاب مقدس چه کاری داره؟ جواب این سوال اینه. اگرچه کتاب روت یک داستان عاشقانه هست اما در اصل اون چیزی بیش از یک داستان آشغانه است. سه کتاب اول تاریخی کتاب مقدس عبارتند از یوشه، داوران و روت. به این کتاب ها کتاب های تمثیلی تاریخی میگیم. شش کتاب تاریخی بعدی عبارت از سموئیل تا پایان تواریخ که بهشون کتاب تاریخی پادشاهان میگیم. سه کتاب بعدی تاریخی عبارت از ازرا نهمیا و استر که کتاب تاریخی بعد از اسارت نام گرفتن. روت سومین کتاب تمثیلی تاریخی هست. کتاب یوشه اگرچه کتابی تاریخی هست اما کتاب تمثیلی بزرگی برای زندگی مسیحی هم هست. درست هم که بنی اسرائیل وارد سرزمین وعده شدند و اونجا رو کردند ما هم باید وارد سرزمین وعده تجربیات مسیحی، زندگی مسیحی و برکات مسیحی بشیم. کتاب داوران تمثیل بزرگی از ارتداد و بیداری بود به محض اینکه وارد سرزمین وعده تجارب مسیحی بشید و خدا رو در اولویت قرار بدید و خدا رو خدمت کنید، خدا شما را برکت میده. آیا این به این معنیه که شما دیگه نمیتونید از جایگاه فیض سقوط کنی؟ نه. کتاب داوران به طور تمثیلی به ما میگه که میتونیم سقوط کنیم. گفتیم که معنی کلمه ارتداد یعنی خارج شدن از موضعی که اتخاذ کرده بودید. در پایان کتاب یوشه بنی اسرائیل موضع اتخاذ کردند و وقتی یوشه موضع خودش را اتخاذ کرد گفت من و اهل خانه خدا رو خدمت خواهیم کرد. اونها هم گفتند ما هم خدا رو خدمت خواهیم کرد. به هر حال در کتاب داوران اونها از موضع خودشون عدول کردند یعنی مرتکب ارتداد شدن. کتاب داوران کتاب تمثیلی بزرگی هست که به ما میگه ما هم میتونیم همون کار رو بکنیم. ما دائما نیاز داریم که تقویت بشیم. این حقیقت به طور تمثیلی در کتاب داوران بیان شده. کتاب رود که کتابی تاریخی هست همینطور تمثیلی زیبا و نیز داستانی عاشقانه زیبا نیز هست. کتاب روت نجات ما و رابطه ما با خداوندیسای مسیح رو به عنوان رابطه ی عاشقانه به تصویر میکشه ما با او نامزد شدیم او داماد هست. ما به عنوان کلیسا عروس او هستیم ما این تمثیل رو وقتی که وارد کتاب روت بشیم خواهیم دید کتاب روت داستان رستگاریه کتاب روت تبدیل به تمثیل بزرگی از کلمه زیبا در کتاب مقدس میشه و اون کلمه زیبای کتاب مقدس باز خرید کردن هست یادتونه که در مقدمه این دوره گفتیم که قرار نیست کتاب مقدس یک کتاب تاریخ تمدن و یا کتاب درسی آفرینش و منشه امدا باشه هدف کتاب مقدس اینه که به ما تاریخ نجات و زمینه تاریخی رو بده که ناجی در اون زمینه آمد و نجات توسط او حاصل شد کتاب رود اون نجات رو به تصویر خواهد کشید پس پیغام کتاب رود بزرگترین پیام اصلی کتاب مقدس هست پیغام به صورت یک داستان به تصویر کشیده شده اگر شما داستانهای زیبا رو دوست دارید و اگه اهل ادبیات هستید مطمئنم که شما ارزش ادبیاتی این داستان زیبا رو خواهید دونست هر داستان خوبی این طور شروع میشه که به سؤالاتی مثل این کی، کی، کجا و چی جوابهایی به شما میده به این سوالات در آیات نخست کتاب رود جواب داده شده. کتاب با این مقدمه شروع میشه و واقع شد در ایام حکومت داوران که قحطی در زمین پیدا شد مردی از بیت بیتلهم یهودا رفت تا در بلاد معاب ساکن شود او و زنش و دو پسرش و اسم آن مرد علی ملک بود و اسم زنش نعومی و پسرانش به محلون و کلیون مسما و از افراتیان بیتلهم یهودا بودند پس به بلاد معاب رسیده در آنجا ماندن علی ملک شوهر نعومی مرد و او با دو پسرش باقی ماند و ایشان از زنان معاب برای خود زن گرفتن که نام یکی عرفه و دیگری روت بود. و آنجا قریب به ده سال توقف نمودند و هر دوی ایشان محلون و کلیون نیز مردن و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم ماند. در همون پنج آیه اول شما جواب اساسی تون رو می گیرید. اولا که؟ آیات به ما میگند که داستان در ایام داوران به وقوع پیوسته و اگر شما در تیه بررسی کتاب داوران با ما بودید خواهید فهمید که معنیش چیه بعد این کجا واقع شده در دو محل در بیت لحم یهودا و موآب و چه کسی های اصلی این داستان زیبای کوچک هستند مردی به نام علی ملک بود معنی نام او این هست خداوند پادشاه من است اسم او نشون میده که والدین او آدم‌های روحانی بودند یا شاید این نام نشان از شخصیت این مرد داشت. نام زن او نعومی به معنی خوشحال بود. اونها دو پسر داشتند. محلون و کلیون. اون اسامی در ابری به معنی بیمار یا ضعیف و پریشان بود. اونها احتمالاً از نظر سلامتی در وضعیت خوبی نبودند و خیلی قوی نبودند. یک قحطی حادث شد. این جواب سوال چی هست؟ در لحم یهودا قحطی واقع شد. وقتی که قحطی واقع شد این خانواده علی ملک، نعومی و دو پسرشان محلون و کلیون به سرزمین مواب رفتند مواب سرزمینی بود که در کتاب مقدس جایی مثل مصر قلمداد شده مصر تصویری از دنیا و اسارت ما در گناه است اون به خاطر اسارت یهودیان در اونجا مفهومی منفی در داره. بنی اسرائیل قرار نبود که در مواب باشند اونها همینطور اکیدن ممنوع شده بودند که با معابی ها ازدواج نکنند. اما وقتی این قهتی زده ها، این خانواده به معاب رفتند درست مثل ابراهیم که در کتاب پیدایش به جنوب رفت ابراهیم فقط به مفهوم جغرافیایی به جنوب نرفت. ابراهیم از نظر روحانی سقوط کرد و تمثیلی در اون هست که ما شاید همینجا در آیات نخست این داستان زیبای عشقی داستان خانواده گم شده اون رو میبینیم اونها به معاب رفتند و به مدت ده سال آنجا ماندند ما میتونیم معاب رو با کشور دور در داستان پسر گمشده یکی بدونیم پسر گمشده خانه پدرش رو ترک کرد و به کشوری دور رفت داستان این خانواده از همون الگو که در داستان پسر گمشده هست پیروی میکنه در کشور دور بود که سختی ها به اونها روی آورد وقتی که پسر گمشده به خانه برگشت وقتی که به خانه پدرش برگشت زمانهای خوشی از سر گرفته شد به نظر می رسه که اینجا یک الگویی هست. تا زمانی که خانواده گم شده در زمین معاب بودند، همونطور که انتظار می رفت، محلون و کلیون هر دو مردند و پدرشون علی ملک نیز مرد. حالا تمرکز بر روی نعومی هست. مادر که شاید به عنوان مادر گم شده به تصویر کشیده شده. وقتی که بر نعومی تمرکز می کنیم، مثالهای خوبی از اصول و الگوهایی که در داستان پسر گم شده هست می بینیم. تا زمانی که نعومی در کشور دور در معاب بود شرایط بسیار سخت بود. او شوهر و دو پسرش را از دست داد. قبل از اینکه این دو پسر بمیرند اونها با زنان معابی ازدواج کرده بودند که این برای اونها ممنوع بود. اون اکیدا من نشده بود، اما اگر با خارجیها ازدواج میکردند محدودیت های خاصی بر اونها اعمال میشد. این وضعیت مطلوبی برای نعومی نبود. نعومی با شوهری عالی و دو پسر به معاب رفت. اگرچه پسرها از سلامتی کامل برخوردار نبودند، اما حالا میبینیم او شوهر نداره، پسر نداره و دو عروس معابی داره. ما همه اینها رو در اون پنج آیه اول داستان میبینیم. داستان با آیه شش ادامه پیدا میکنه. پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلاد معاب برگردد. زیرا که در بلاد معاب شنیده بود که خداوند از قوم خود تفقد نموده نان به ایشان داده است. این مفهوم رو در پسر گمشده نیز میبینیم وقتی که او در خوددانی این دنیا بود یا وقتی که در کشور دور این دنیا بود میشنوه که در خانه پدرش همه چیز به فراوانی هست. در آیه هفت میخونیم و از مکانی که در آن ساکن بود بیرون آمد و دو عروسش با وی همراه بودن و به راه روانه شدن تا به سرزمین یهودا مراجعت کنند. حالا شما بازگشت گمشده رو دارید. وقتی که نعومی تصمیم گرفت به سرزمین نان و پرستش مراجعت کنه رو به دو عروس خود کرد و گفت بروید و هر یک از شما به خانه مادر خود برگردید و خداوند بر شما احسان کند چنانکه شما به مردگان و به من کردید. منظورش از مردگان شوهر و پسرانش بودند. او میگه من میخوام به بیت بیتلحیم برگردم اما شما مجبور نیستید با من برگردید. او در آیه نه میگه و خداوند به شما عطا کناد که هر یکی از شما در خانه شوهر خود راحت یابید در اون روزها ازدواج برای زن راحتی تلقی میشد به این ترتیب وقتی زنی همسری پیدا میکرد او راحت میشد شاید خیلی از شما اینو عجیب بدونید شاید فکر کنید از وقتی که با اون مرد روبرو شدم روز خوش ندیدم اصلا از وقتی ازدواج کردم راحتی نداشتم اما طرز فکر اونها در اون دوره این بود و به این دلیل نئومی برای اونها آرزوی راحتی در خانه شوهر میکنه و کلام اینطور ادامه پیدا میکنه پس ایشان را بوسید و آواز خود را بلند کرده گریستند زنان خیلی گریه کردند این سزان بارها با هم گریه کردند اونها به او گفتند نی بلکه همراه تو نزد قوم تو خواهیم برگشت و نئومی گفت ای دخترانم برگردید چرا همراه من بیایید؟ آیا در رحم من هنوز پسران هستند که برای شما شوهر باشند؟ او گفت ای دخترانم، برگشته راه خود را پیش گیرید زیرا که برای شوهر گرفتن زیاده پیر هستم. بعد نومی چیزی در آیه سیزده باب یک گفته که واکنش او رو در مورد تمام چیزهایی که از اونها عبور کرده نشون میده. او گفت ای دخترانم، زیرا که جانم برای شما بسیار تلخ شده است چون که دست خداوند بر من دراز شده است. او تمام اینها رو از چشم خدا میبینه. بعد کلام میگه بار دیگر آواز خود را بلند کرده گریستن. خانوما لازم نیست دلیلی برای گریه کردن داشته باشند. اونا فقط گریه میکنن. و کلام ادامه میده عرفه که نامش چیزی مثل گوزن یا دویدن یا مسابقه دو هست. کلام میگه مادر شوهرش رو بوسید و به دنبال سرنوشتش رفت. بعد اینطور طور ادامه پیدا میکنه اما روت به ویچ اسپید حالا نومی به روت گفت اینک زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان خیش برگشته است تو نیز در عقب زن برادر شوهرت برگرد اینجا جایی که داستان بر روت متمرکز میشه و شما با شخصیت اصلی این داستان عشقی آشنا میشید در آیه 16 روت میگه بر من اصرار مکن که تو را ترک کنم و از نزد تو برگردم زیرا هر جا که روی میآیم، و هر جا که منزل کنی منزل می کنم قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود جایی که بمیری می میرم و در آنجا دفن خواهم شد در فرهنگ سامی وقتی اونها میگفتند خداوند بر من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا نماید وقتی این حرف رو بر زبان می آوردن وقتی به کلمه چنین می رسیدن دستشون رو بر روی گلویشان می گذاشتن چنان که گویی چاقویی گلویشان را میبرد. حالا این حسی واقعی از وفاداری هست این طور نیست؟ کلمه ابری هست که حسد تلفظ میشه. اون مثل کلمه یونانی در عهد جدید کوینونیا هست که تقریبا به معنی دوستی یا رفاقت ترجمه شده به این معنی که من به تو تعهد دارم و به تو وفادار خواهم بود حسد مستلزم وفاداری هست روت به ما مثال زیبایی از حسد میده روت وقتی که ملزم به این وفاداری به نعومی شد، به ما مثال زیبایی از حسد میده. من فکر می‌کنم که توی کتاب مقدس شوخ‌طبعی‌هایی هست چون که گاهی چیزها رو طوری بیان میکنه که گویی شوخی هست. در پاسخ به تعهد و وفاداری عظیم روت که نسبت به نعومی ابراز میکنه کتاب مقدس میگه: "پس چون نعومی دید که او برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد." ما میدونیم که وقتی زوجها ازدواج می کنند، به عنوان پیمان اصلی ازدواج از این دعای استفاده می کنند. شانزده و هفته باب اول رود تعهد این بود. هر جا که بروی من خواهم رفت. هر جا که زندگی کنی من زندگی خواهم کرد. قوم تو قوم من خواهد بود. خدای تو خدای من خواهد بود. هر جا که بمیری خواهم مرد. و هر جا که دفن شوی دفن خواهم شد. این یک تعهد کامل است. و بسیار بجا و شایسته هست که این تعهد در ازدواج به کار گرفته میشه وقتی با کسی ازدواج میکنید متعهد میشید که هر جا میره با او برید و هر جا که زندگی میکنه زندگی کنید شاید فکر کنید که شما با یک خانواده ازدواج نمیکنید اما بعد از چند سال خواهید فهمید که بهتره بگید قوم تو قوم من هستند وگرنه خیلی بهتون سخت خواهد گذشت مهمترین بخش از تعهد اینه خدای تو خدای من خواهد بود اگر شما دیدگاه روحانی مشترک نداشته باشید، اون وقت شما یک اساس مشترک برای ارزش هاتون نخواهید داشت. این یکی از مشکلاتیه که ازدواج ها رو از هم می پاشه. وقتی زوجین نقط نظرات مشترک ندارن، سیستم ارزشی مشترکی ندارن و طرز زندگی مشترکی ندارن، معمولاً طلاق می گیرند. وقتی به این فکر می کنند که وقتشون رو چطور بگذرونند و از پول و انرژیشون چطور استفاده کنن، به نظر میرسه که در هیچ چیز توافق ندارند. اساسی که به شما نقطه نظر مشترک میده یا سیستم ارزشی یا طرز زندگی مشترک اینه که بتونید بگید خدای تو خدای منه، هر دوی ما خدای مشترک داریم و این خدا در مورد همه چیز به یک طریق حس میکنه و ما ارزش هامون رو از او میگیریم. به این ترتیب شما سیستم ارزشی مشترکی خواهید داشت. من به شما کلیدی خواهم داد که ببینید چطور این داستان عشقی داستان نجات ما رو به تصویر میکشه. هر شخصیتی در داستان بودی از نجات ما رو بیان میکنه. رود چه کسی و چه چیزی رو به تصویر میکشه؟ نعومی کی و چه کسی رو به تصویر میکشه؟ بعد از اون ابراز وفاداری هرتتنگیز ما میخونیم که ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت لههم رسیدن و چون وارد بیت گردیدن تمامی شهر بر ایشان به حرکت در آمده زنان گفتند که آیا این نعومی است؟ ما دیدیم که وقتی نعومی و شوهرش بیتلاهم رو ترک کردند و به معاب رفتن از اون جایی که قوم برگزیده نباید به جایی مثل معاب میرفتند، این حس به وجود میاد که این خانواده خانواده گمشده و نعومی مادر گمشده بود وقتی که گمشده ها برمیگردند مردم اغلب میگند آیا این همون کسیه که ده سال پیش سرزمین نان و پرستش رو ترک کرد؟ مسئله سالها نیست. مسئله مسافتیه که گمشدگان به جای دوری میرن کتاب مقدس میگه راه خطاکاران راه سختی هست من فکر میکنم بزرگترین دروغ اینه که میگن کسانی که واقعا خوش میگذرونند و از زندگی لذت میبرند گناهکاران و خطاکاران هستند کتاب مقدس میگه ساده نباشید راه خطاکاران راه دشواری است حتی فرزند خدا که به مدت ده سال گم شده بود و بعد دوباره برمیگرده خطوطی در صورتش خواهد داشت که وقتی خانه پدری رو ترک کرد در صورتش نبود وقتی که روت این دختر معابی و نعومی وارد شهر شدند مردم سؤالی پرسیدند که بر نعومی متمرکز بود آیا این نعومی هست؟ نعومی پنج بار در باب اول کتاب روت خدا رو سرزنش میکنه. همه ها رو گردن خدا میندازه او گفت مرا نعومی نخوانید بلکه مرا مرره بخوانید معنی نعومی یعنی شاد مره یعنی تلخ نعومی گفت مرا شاد نخوانید مرا تلخ بخوانید زیرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانیده است پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانید پس برای چه مرا نعومی میخانید چون که خداوند مرا ذلیل ساخته است و قادر مطلق به من بدی رسانیده است او تمام تقصیرها رو از خدا میبینه نعومی منو یاد هارون میندازه وقتی که او گساله تلایی رو ساخت کتاب خروج به ما میگه که هارون صنعتگر ماهری بود و تمامی ذوق و ظرافتش رو در ساختن اون گوساله طلایی به کار برده بود. وقتی که موسی از کوه سینا فرود آمد و اون گوساله رو دید به او گفت هارون این قوم به تو چه کرده بودند که گناه عظیمی بر ایشان آوردی؟ هارون به موسا گفت موسا باور نمی کنی من تمام این طلاها رو در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد. اون حقیقت نبود. اون گوساله طلایی به یک بار از میان آتش بیرون نیومد اون نتیجه کار و هنرمندانه هارون بود او گوساله رو ساخت چون که میخواست مردم رو راضی کنه نامی هم وقتی تمام این بدبختی ها رو به خدا نسبت میداد در واقع همون کار رو میکرد مثل اینکه داشت میگفت من تمام این طلاها رو توی آتش گذاشتم و این گوساله از آتش بیرون اومد و همش تقصیر خدا بود من نمیدونم چرا خدا به من مرارت رسانده نمیدونم چرا مرا ذلیل ساخته نعومی داشت نتیجه کارهای خودش رو میدید عواقب تصمیمی رو که گرفته بود اما نمیخواست که مسئولیت عواقب اون تصمیمات رو بپذیره آخرین آیه باب یک میگه و نعومی مراجعت کرد و عروس شروط موآبی که از بلاد معاب برگشته بود همراه وی آمد و در ابتدای درویدن جو وارد بیت شدند این اشاره به این واقعیت داره که وقتی اونها به بیت لحم برگشتن شروع برداشت جو بود. ببینید وقتی که این زنان وارد بیت لحم شدن، نعومی تصویر فرزند خداست که به خانه پدرش برمیگرده. ما در ادامه داستان می بینیم که فیض خدا منتظر بوده که او رو در بر بگیره. درست مثل پدری که دوان دوان به سوی پسر گم شده می‌یومد. وقتی که پدر دید پسر گم شده تصمیم گرفته به کشور دور سفر کنه، اجازه داد که اون پسر بره پدر همینطور اجازه داد که پسر تمامی عواقب سرزمین دور رو تجربه کنه ما اغلب به عنوان والدین وقتی فرزندانمون در کشور دور هستند شکست میخوریم. وقتی که عواقب میرسند و اونها در حال یادگیری چیزی هستند ما به کشور دور میریم و اونها رو نجات میدیم وقتی که داستان پسر گم شده رو میخونید این عبارت بر میخونید هیچ کس به او چیزی نمیداد این شامل پدر او هم میشد. این عواقب وخیم در اون خوکدانی بود که سبب شد پسر به خودش بیاد. این زمانی بود که او تصمیم گرفت که بگه من یک خوک نیستم. او یک پسر بود و به خوکدانی تعلق نداشت. او به خانه پدرش متعلق بود. وقتی پسر گم شده به خودش اومد و قدم اول رو به طرف خانه پدر برداشت اون پدر به صورت پیرمردی تصویر شده که به طرف پسرش می دوید. لوقا پونزده بیست میگه اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده دل بر وی بسوزان و شتابان به سویش دویده در آغوشش کشید و قرق بوسه اش کرد. تا حالا پیرمردی رو دیدید که در حال دویدن باشه؟ چیزی بیشتر از دویدن برای یک پیرمرد تغییرامیز نبود. صحنه دویدن این مرد یکی از زیباترین تصاویر در کتاب مقدس در مورد محبت خداست. اون محبت پدر رو نسبت به پسر گمشده نشون میده که به خودش اومده و به طرف خانه برگشته محبت خدا با دویدن یک پیرمرد تعریف شده وقتی که اون پیرمرد پسر خودش رو در آغوش میکشه اون پسر رو اون پسر غرق در گریه هست و میگه من شایسته نیستم پسرت خونده شوم و میخواهم که در بین خدمتکارانت زندگی کنم پدر همه اون چیزها رو کناری میذاره و میگه این پسر منه انگشتری به دستش کنید ردایی شایسته پسرم بر تنش کنید گوساله پرواری بکشید پسرم مرده بود و حالا زنده شده گم شده بود و حالا پیدا شده پس بیایید جشن میگیریم. نعومی همون چیزها رو وقتی به بیت لحم یهودا آمد تجربه میکنه. فیض خدا منتظر او بود در این داستان زیبا این چیزی که ما در مثال نعومی میبینیم، حالا روت محور اصلی این داستان اشقی شده روت تصویر کسانی هست که عضوی از خانواده خدا نیستند روت یک یهودی نبود او یک خارجی بود آیا خدا برای کسی که عضوی از خانواده الهی نیست فیزی داره؟ یقیناً داره فیض خدا ربطی به شریعت او نداره راه حل خدا برای نعومی و روت در قوانین خدا هست اولین قانون خدا که فیض رو برای روت و نعومی به و آورد در لاویان باب 19 آیات 9 و ده هست این قانون به نام قانون خوش چینی معروف هست که میگه و چون حاصل زمین خود را درو کنید گوشه های مزرعه خود را تمام نکنید و محصول خود را خوش چینی مکنید و تاکستان خود را دان چینی من ما و خوشه های شده تاکستان خود را برمچین آنها را برای فقیر و قریب بگذار من یهوه خدای شما هستم چرا این اهمیت داره؟ از این جهت اهمیت داره که ظاهرا یا ناعومی یا شوهر سابق روت محلون این قوانین رو به روت یاد داده بودن. بنا به گفته باب دوم کتاب روت در اولین روز ورودشان به بیت لحم روت تصمیم گرفت که از این قانون ثبت شده در باب 19 لاویان بهره مند بشه او می‌خواست که برای خوش چینی به مزاره بره ما میخونیم که ناعومی خیش شوهری داشت که مردی دولتمند بو از نام از خاندان علی ملک بود و روت معابیه به نعومی گفت مرا اجازت ده که به کشزارها بروم و در عقب هر کسی که در نظرش التفاتیابم خوش چینی نمایم او وی را گفت برو ای دخترم پس روانه شده به کشزار درآمد و در عقب دروکنندگان خوش چینی می نمود و اتفاق او به قطعه زمین بو از که از خاندان علی ملک بود افتاد یکی از قوانین مهم شریعت موسی که در این قسمت از داستان شهر داده شده و در باب 25نجم تصنیع آمده به نام قانون ولایت هست این قانون به این صورت اعمال میشه که اگر برادر مردی بمیرد و او پسری نداشته باشد همسر او نباید با کسی غیر از خانواده ازدواج کنه. بلکه برعکس برادر شوهر او باید با او ازدواج کنه و اولین پسری که این زن به دنیا میاره به عنوان پسر شوهر قبلی یا برادر وفات یافته به حساب میاد تا اینکه نام او فراموش نشه اما اگر برادر شخص متوفا از گرفتن همسر برادرش امتنا بکنه از سر باز بزنه اون وقت اون زن باید نزد مشایخ شهر بره و با آنها بگه برادر شوهر من از نگه داشتن نام برادرش عبا میکنه و از ازدواج با من امتنا میکنه مشایخ شهر او رو فرا میخونند و با او صحبت میکنند و اگر هنوز هم بخواد خواد کنه، اون وقت بیوه برادرش آمده و کفش از پای او در میاره و به رویش آب دهان میندازه این همیشه نحوه احقاق حق یک زن بوده. بعد اون زن باید بگه با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند چنین کرده شود و نام او در اسرائیل خانه کفش کنده خونده شود. توجه کنید که چطور این قانون در مورد روت به اجرا در میاد. از اون که روت با مردی یهودی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج او وارد خانواده خدا و قوم یهودی شده حالا اگر شوهر او مرده و اونها فرزندی ندارند حالا دیگر روت عضوی از خانواده خدا محسوب نمیشه حالا او دیگه جزی از قوم برگزیده خدا نیست آشکار هست که خدا فکر نمی‌کنه این درست باشه به این دلیل خدا این قانون رو برپا داشته تا او بتونه نزد خوشتیپ ترین و ثروتمندترین خیشاوند همسر متوفاش بره و بگه میخوام که با من ازدواج کنی اگر او بگه اگر تو تنها زن روی زمین هم باشی من با تو ازدواج نخواهم کرد او میتونه بگه بسیار خوب تو رو نزد مشایخ شهر خواهم دید او میتونه دعوای علیه اون مرد قامه کنه و اون مرد رو به حضور مشایخ شهر حاضر کنه و اگر نخواد با او ازدواج کنه مشایخ شهر میتونند این تشریفات رو به مهمترین چیز در مورد این تشریفات این بود که اون شخص باید تحریم بشه، رسوا بشه و احتمالاً کسی با او معامله نکنه چون که او از ازدواج با این زن امتنا کرده. مردی که با چنین زنی ازدواج میکرد دو کار برای او انجام میداد. اولاً هر قرضی که اون زن داشت، او پرداخت میکرد، مشایخ دفتری داشتند که در اون نوشته میشد و مهر میشد. تمام بدهی های زنان در اون دوران در اون دفتر ثبت و مهر میشد. اون مرد باید تمایلش رو برای بازخرید کردن این زن اعلام می کرد. تمامی این مراحل آزادسازی گفته می و اون مرد خویشاوند آزاد کننده نامیده میشد. این مرد باید قبل از اینکه بدون بدهی‌های این زن چیه تمایلش رو برای باز پرداخت اون اعلام می کرد. جالب ترین مسئله اینه که این مرد تا زمانی که به تعهدش برای آزادسازی اون زن به عنوان خویشاون عمل نمیکرد، نمی دونست که این برای او به چه قیمتی تمام خواهد شد. دومین کاری که این مرد باید انجام میداد این بود که باید با اون زن ازدواج می کرد و با ارتباط با این زن او را به خانواده الهی باز میگردون. باز خرید کردن به معنی دوباره خریدن و پس گرفتن هست. پس مردی که این قانون و 25 رو میپذیرفت یک ناجی به حساب می اومد. امید روتیم بود که به محض اینکه به بهط یهودا برسه از این قانون برخوردار بشه به این دلیل که باب دو با اخبار مهیجی که مادر شوهر متوفایش به او در مورد خیشاوندی دولتمند به نام ازمیده شروع میشه در حالی که این داستان عشقی ادامه پیدا میکنه ما تصویری زیبا از فیض خدا میبینیم از فرزندی گم شده که به خانه برمیگرده و فیض خدا رو برای کسی میبینیم که برای نجات به حضور خدا میاد در حالی که این داستان زیبای عاشقانه رو در کتاب روت می با خودتون از طریق این داستان در کتاب مقدس مواجه بشید. مانند روت که نزد بو از آمد به حضور عیسی بیایید و او بگید که به یک ناجی نیازمندید، به یک بازخرید کننده و بگید ایسا من به تو اعتماد می کنم، اگر شما مانند نعومی در سرزمین دور، سرگردان و دور از ناجیتان هستید، به سوی او بازگردید او منتظر شماست خدا شما رو دوست داره این درسیه که ما از کتاب روت میآموزیم دانشوی عزیز امیدوارم که نزد ناجی بیاین و از اون بخواین که شما رو بازخرید کنه بدهی های گناه شما رو که هرگز نمیتونین پرداخت کنین بپردازه و هدیه نجات ابدی اون رو بپذیرین ترتیبی بدین که در جلسه بعد هم در ادامه داستان نجات و این کتاب زیبای عاشقانه با ما همراه باشین. خدا مشتاقه که همه رو نجات بده. با این حال ما انسانها با اراده آزاد خلق شدیم و باید از اون بخوایم که ناجی ما بشه. تا برنامه بعدی محبت اون شما و خونوادتون رو در بر بگیره.